و آلت خیلیدین و و محسومین و درست داری متعرار داری مجمعین اللهم نفرنا جمیت مشغلی که شد قبل از برود در بحث احساسی مدل و از امور و نام تمهید یا مقدمات یا مبادی تصوریه بیان شده از که در مرحث آموخاص مطالبی رو که به را آموخاص بود مفصل در مورد بخصه شد مثلا شباهات مصداریه آیا خاص فرمان تق... بنامه میشه تخصیص، انواع احکام تخصیص و بعد در شباهات مصداریه مخصص، مخصص مرتصد، مرتصد شباهات محبومیه این صحبت ها در بحث آم بودش از در بحث مطلق و مقیم بحث اساسی یه و اون هم حمل مطلب بر مقیم بلیه بحث ها آیا مثلا در شروعات تقیید چه کار رو کنیم میشه تمام اینها رو ارجاع به آم دادن دیگه تو بحث مطلب و مقید اینها رو دو مرتبه نموندن فقط در بحث مطلق و و مسئله احساسیشون حمل مطلق بر به اصلاح مقیده از در آم هم همین بحث بود تخصیص باشه نسخ باشه در آن هم به تخصیص تخصیصان و که به چون در محثه آم مخصص امرش واضح بود در آنجا روشنتر بود مسئله تخصیص مثلا فرص اکثر اکتمال علمان فرصال علمان تخصیص اما در اینجا چون مطلق ساعت ارتر رقب بزن ارتر رقب این احتمال وارد هست که ارتر رقب بزن خرید تقییب نداره باشه یا با قوله بزید یا درسته استحباب بکنه مصطحب هست که این رقبه مومنه باشه فرنزا حوابست مطلق و مقید از این جهاز فرق می‌کنه البته کردم چرا هم در کلمات این چه چه قدیم، یک خلیطی بین مطلق و آن هست یعنی در برکات مباحث من آن گالگاه که مثال هاشون این خلط هست مثال ها. این خلط وارد شده بگه در ها خوبشون هم ازدهشون شدن در اصول ما هستی خیلی راحت مطلقه شدن این دو ها با همدیه فرم و خلاصه فرمشون اینه که در آن خود لبس لبس شده برای افاده به اسطلاح نظر به حال عموم افرام حالا یا به نحر عموم بدلی یا به نحر عموم استقرافی چون عموم مجموعی رو ما قرور نکردیم از که ما چیزی رو عموم مجموعی نده. یا به نحر بدلی مثل ایو اکرم، ای آلمه یا به نحر عموم استقرافی اکتنه خلما این در رو پر قرار برش شده اما در مطلب برد نشده فرق اصاسیشون اینه در مطلب نظر به خود ماهیت و ذات. و حقیب به ماهیت هم احسده دیگه سکرار برد کنیم یه نوع مجازه چون در مطلب اینطور نیست که همیشه مطلقه ما جزه حوایق باشه مثل مثل جینی به ماه نه گایوگاه هم جزه امور اعتباریه اصلا تذر مثلا زوجتن ساله زوجیت عمره اعتباری است مثلا ما با با جمعه علیکم بگیم اطلاق در رحمه احوال می اعتباری و ولذا ماهیت در اینجا متابقه با عنوان عنوان موضوع که تعلق مهل خوب دنبال مسئله حقایب متحصله نیست اینجا عنوان ماهیت در حد وجوده این یه ای اصطلاقیت ماهیت به کار روزه خود ذات عنوان بدون در نظر گرفتن. خصوصی ها پس این دوتا کاملا واضحه و این شالا برنم این رو برنمون کار دید اون جمله از امور رو به و مقدمات و موادی تصوری هست شد یکی امروی که آخر متعرضه شدیم این از که مردم نایمی عدس الله نفسه و دیادی از بردان تقابل دین اطلاعات اطلاع و رو از قبیر یا شدیر یا به تقابل عدم عمله که می دونن. نه تزاق و نه سلب و ایجا مرمون مستاد به زن الله سعاده که اگر مرادشون اقلاق و تقییر در مقام سبوت باشه تزازه و در مقام اصباد همون به اصطلاح عدم عمله اصلا خدمتون که وزیده یا نویشن در مقام سبوت سلب و ایجا اصطلاح این به افتحه اصباد و در مقام اصباد همون عدم عمله من توضیحش عرض کردم تقابلی که در اینجا مثلا اصطلاح تقابل و بزهرهای متحصده اینجا مراد نیست نسبت و هم بفت نسبت اطلاق و تبیی چیزی شبیه همون عدل مولکه هست و اصولا اطلاق و طبیل به لغاز مقام سبوت بررسی نمیشه این مطلب استاد که در مقام سبوت اینطور در مثلا بحث ما توی اصلاحات هره توی بحث مقام سعود که میگیم نسبتشون در مقام سعود آیا سلو ایجاب یا تضاده اونی که در بحث اصول مطرحه و در فقر مطرحه از کردن این موارد اول در دنیای اسلام در فقر آمد بعد جداش کردن در علم اصول اصول ازادادن این مواردی که در اصول آمد تماما نظرشون به مقام اصلاحات و مقام مثلا کاری به افلاق و تقیید مقام و سبوتی که حالا بگیم نصفتشون سر و یا نصفتشون مثلا تقابلشون تقابل بوله بسا تضاده برگرسه به سر و ایجابه که همه کنه علایه که به ماکان پس بنابراین این برس در اینجا بیه اثر و نوچه دیگری که در سفر می این برس باید ارزو کنیم شد که اطلاق و اطلاق و ما گاهی به محلول تصور گاهی به محلول تصدیقی این مطلب که توابونشون سلویجان در مقام دلالت و در جایی تقییر اطلاع درسته که تقییر ممکن باشه. این مال هم مقام تصدیقیه که شده هر سایی این اطلاع و اصلاح و که به لحاظ محلول و اما به لحاظ محلول تصدیقیه اصلا این نقطه توش نیست یعنی این نقطه به توش ملاحظه اصلا نمیشه مثلا وقتی گفت جهنیب ماه این اصلا نظر نداره که این آب ممکن است یا ممکن نیست اصلا مده نظر نیست یعنی صحیح فرصان هم که جهنیب ماه ما نمیشه مثلا اگه گفت جهنیب ماه خلال هر مثلا که آب خب خلال در دقیقه آب از کوره مریخ آب باش آب باشه هم بتونه بیاره در دقیقه بیستر تو میشه. دقیقه نمیشه. مگرد به اجازه الاری باشه اصلا که این بستر این نیست که چون ترید ات... نمیشه در پس اطلاق هم نداره نه اصلا توی مقام تصوری قید از حقیقت و قید از عنوان و اولار قید از مالیت و غیر از ذات هیچی لحاظ نشده نه امکان نه امکان استحاله اصلا نظر به مقامات اونی که میگن اطلاع و تقیید نصفتشون حدر من ملکه که مربوطه به حکمه نه اونی که مربوطه به, به اصطلاح دلالت تصوری یا مطبور تصوری باشی به ما این ما ذات ماه مراده اصلا نظر نداره به این که حالا از کوره باشه خود ماه اون ما ماه مستحیل باشه و مستحیل نباشه ممکن باشه یا ممکن نباشه نظری که داره به خود ذات ماه ولی شاید که به افراد آب نگاه نمیکنه، کنه به و آب به انگاه آب هم نگاه نمیکنه. نگاه نمی که این آب آلا ممکن هر یا ممکن نیست اصلا نظری به این مقام نداره. داره به ماه خود آب به ماه به آب این موضوع شده هیچ حیثیت فردی شخصی نوعی هیچ حیثیت ای توش لحاظ که جز خود عنوان آب ماست داره ما. این عنوان این الان موضوع حکم شده دیگه نظری بیدین قسمت نداره که بله اون جهنی که حکمه اون محل کلامه که حکم در جایی که میگیره که مقدور باشه وقتی حکم مقدور نباشه حکم ببینید برگشت اون مدول تصدیقی اونم بخاطر ای که در پیش اغلا قرار است که تکلیف آجه درست نیست بله در این که تکلیف و آجل درست نیستیجی اختلافی نیست این نمک خلاف در این که اگر تکلیف را رو جامعه حبوده بس بکنیم این اختلافی مثلا یا اگر نزینا رفت روی مجموعی ای مؤمنی آیا این تکلیف که رفت روی اگه عنوان آیا در عدد افراد منحل میشه؟ به حیثی که این تفلیف برای افراد قادر خواهد بود برای عاجز نخواهد بود این اون مبنی معموم نیست یا منحل نمیشه رفته با عنوان عنوان یا یا لفی این عنوان خودش کافیه منحل نمیشه اگر کسی توان بود نتونست روز بگیره نتونست حج بره نتونست فسوری نواز بخونه این در حقیقت محضوره نه اینکه تکلیف رو نمیگیره به حکم عقل محضوعه پس در اونجا در حقیقت در بحث قدرت که این از مقایش بسیار مهم هم محضوعی این بسیار مهم نیست آیا تکلیف منحل میشه فقط افراد قادر رو میگیره و غیر قادر و آجز رو از میگیره این مقنوع مشغول که اعتماعیم اهل سنت هم همین مقنوع رو داره. یا نه اصلا تکلیف منحل نمیشه یا یا یا از این آمان و عقی مخاطب و مکلف هم عنوان مؤمنه حالا یک فردی در یک جاییست که امکان نداره نغاز بخونه این فرد بخونه. یا اصلا حالتش مستاعد نیست در حالت اقماه این فرد محضوره ببینید محضوریت آجز یک چیز انحلال تکلیف چیز دیگر نیست. و این انهلال هم باز درجات داره من نیمه خواهد این بحث باشم تو درست ترتب مفصل این بحثتار رو اونجا متعرض شدید و از به هر حال این بحثی که الان در قصور هست اینه ارزکرد اینه که از ما بارد اختلاف در حیفت ای اینه که آیا آجل محضوره یا اصلا آجل تکلیف نداره یا در تکالیف این یک مسئله یا در تکالیف خطاب رسول و عنوانه ایوالوزین آمنو فرد رو نمی نمیکنه نمی کنه آجزه با همه یک نواسه فقط کسی که آجز شد تو زرک انتصال اون محضوره این به زرک جنگ سرایت نمیکنه. کنه و کردم که از کلمات مرمو استاد از وقتهای کوئی و در درسیشون هم بود ایشون ظاهرا مثل مرمضانه‌ای قالب به انحلال که عاجل تکلیف نداره اما در یک جا از تو بحث حد یا بحث عذر یک عوارض ذیل تطارض. یک جایی ایشون توی که عاجل محذور به لحاظ تکلیف مطرح نمیشه. که اینو شاید مثلا شبه تهافوطی در مجموعه کلام العلاکو اون مقداری که ما غالبا در درازیشو میشنافتیم این عاجل تکلیف نداره. در پس بنابراین اگر گفت جعنی به ماه این اگر فرض کردیم یه چیزی معدور نیست تکلیف بوده نباید شد اگر تکلیف او مقیلن نخواهد شد خب اصلاح هم دیگه مناده به اطلاق خب هم از صحبه به این حضی سه از کردیم مرحوم ناییم هم بودن کلام کلام درستیه ما تأمین دادیم کلام مرحوم رو. از کردیم اگر در مقامی هم باشه که تقیید نمیشه او اگر تغییر امکان نداره اطلاقا میدونه لیکن این مراده از این تقابل به سر سل ادم امنکه یا به منزله ادم امنکه یا شبیه ادم امنکه این در اطلاق تصدیقیه نه تصوری ما قاعدتا در اطلاق تصوری تنسک به انصراف میکنیم که در بحث روزشت هم اینکه از واقع بروح انصراف مثلا میگیم لفظه ها انصراف داره با آب لوله اما کیز در چا آب بیاره خیلی بعیده الان هیچ جار یا آب بیاره آب لوله براد این صرف خیر از امکان تغیر و علم امکان بحث می گیره به اون بحث وقتی و بحث نداره پس این مطلبی است که اشون فرمودن به این نه تصیح میشه جزوه مطالب دیگری که در اینجا مرحوم ناهینی سرد و استاد هم اعتراض نشده بحثید که مفصلم تو بحث واجب مشروط گذاشی که باز در این جا هم به زبان دیگری رو بردن و ما بحث که آیا اطلاع و تقیید فقط به لحاظ موضوع و متعلقه یا به لحاظ حیعت هم میشه همین مثال روی که اعز کردم که بادن مثلا جنی به ما اکرمه دو ما در اینجا سه چیز داریم یکی حیعت افعل که به اطلاع در زبان عربی حیاهات معانیش و معانی حرفی است یکی اکرام که اصطلاحاً ماده بشه میگی و در اصول با اون متعلق میگیم یکی هم علمای که اصطلاحاً بهش موضوع میگی گاهی هم بهش متعلق و متعلق میگی یا اکرم آلم هم دقیقاً یا مثلا جهنی به ماه این یا خود موضوع یا اهل الله بیر مثلا خود موضوع که عنوان باشه در این مثال باشه. یا ما باشه یا عالم باشه این موضوع اطلاق درش تصویر میشه اکرام هم اطلاق درش تصویر میشه که ماده برای اون حیرت که اصطلاحا برو بگیم متعلق انم الکلام مدلول حیرت نه مثل جهنی مثل حکرم آیا در این هم اطلاق تصویر میشه؟ من همونها این مزامن نمیشه و از شیخ هم نه شده که چون معنا حرفیه معنا حرفی موضوع لش خاص لذا قابل تقیید نیست ازشون نه رو شده دیگه بختم برید این کلام از شیخ باشه مثلا در مثال این جاک زیدون فکر محب این این جاک این شم این اداز شم مطلوب و اداز شم آیا شرط است برای اکرام یا شرط است برای وجود که مستفاد هیچی ندارد؟ مثلا اگر مهمان آمد نان بخرد در زبان فارسی. اگر مهمان آمد نان بخورد. آیا این آمدن مهمان شرط است برای نان خریدن یا شرط است کهاید برای وجود نان خریده؟ الان متعارف علمان قدیمن و جدیدن این هست که هست برای حیعت مفاد حیعت که وجود باشه یعنی تا مهمان نیامده وجود نداری اگر مهمان آمد وجوب نان خریدن شیخ می چون هیئت معناش معنی حرفی و معنی حرفی جزئی لذا نیتونم تغییر فیدا بکنه لذا از شیخ نمی شده که این شاد کی برای نان خریدن نان خریدن نه وجوب نان خریدن. نان خریدن به مچی زیدن انزاره که زیدن فیلم بیست آخر ماه این زیارت در خانه دیدن شما آمدن کی برای اکرام نه وجود کی دست خود اکرام آن ا... اما وجود نه وجود از الان هست برای شما از الان واجب است اکرامی که بعد از آمده اون اکرام بر شما الان واجب است نان خریدنی که بعد از آمده نان خریدن بعد از آمدن اهمانه لیکن وجوب الانه این هرکیست که حرف هر در تقریدات به محبوم شیف نسبت داده شده و دیگه نوشتن که اینجا شد محبوم به اصطلاح صاحب تقریدات قدس الله نفسیی شد مثلا دقیقاً نتونسته به شیخ رو منتقل کنه. لكن این حرفه ناینی هم داره. هم میفرماینه معنای هیئت که معنای هر چیز این قابل تغییر نیست و لذا قابل اطلاق هم نیست تو اینجا در میاد. چرا؟ نکته ایشان چیه؟ این نکته‌ای ایشان در اینجا چون به در اجمال آورده نه به مقدار که مختصر توضیح میدن دیگه توضیح و فصلیش تو معنا من اونان در بحث معنای حرفی انفراد در غیر این معنای ایشان بقیه ندارم ایشون می‌فرماید که معنای حرفی اختاری است نه ایجادی ایشون فارق بین معنای حرفی و اسمی رو در اختاری و ایجادی می‌دونن معانی اسمی رو ایجادی می‌دونن معنای حرفی رو اختاری می‌دونن من صدرا تکرار ایشا ندیده میخونه. ایشو مصالحات. من هر کیو ایشان اختیاری میدونه. بَرَختی بله حواستون به اجادی من. هر بایشان. من کلمه ایجاد اختار بدمعنا کردنم الا مراد من واضحه بود اصطلاح تا... رو کار ایشون معنی حرفی رو ایجادی میدونم. من توضیحش رو در میگم مطلبش واضحه اصطلاح رو من غلط به کار بودن. چرا از کردم در دنیای ادبیات انصافا اول کسی که در تحلیل و تدقید در جمله از ابحاظ لغت و سخت و نه انصافا میشه گفت یک تحول خیلی خوبی رو جای کرد ممنون نجوله مردی در این شرح کافیه خودشون شرح شافیه چند خیلی خوبه شرح کافیه خیلی لطیف داره در شرح کافیه خودشون که از خطبه بسیار مفصل نهتون جمعی من میگرم یاده میمید کتاب دیگری بی این مفصلی در نجب نوشته شده در نظر در جواب همین رو ممنی سر رسول الله این کتاب نوشته خودش هم میگه فلمشت مقدس رو خرقه علایه حاله بیشون در این کتاب در معنای حرفی خلافند اون که مشهور بود هم معتقد شد که معنای حرفی یکیه و تصریح کرد فسارت من به منزلت ابتدا او فکان معنی ابتدا و من واحده توی شرق کافی این آخر بحثیشان ایشان آمدن فرقی بین معنی اسمی و حرفی گذاشتن و از کردن من در همون بحث معنای حرفی عبارت ایشان رو خوندیم حضر یک جور زیدش به هر حال چون مبدع این محلق هستن یه مقداره که ابحام داره عبارتیشان انصابا خالی از ابهام نیست در آخر محلقش داره تو امرحر فیوجد و معنافی غیره این کلمه یوجه شاید من نمیدونم منشه شده باشه که محروم این معنا رو ابداع برمودن که معانی حرفی ایجادی هستن از خیلی من لحظه جا بجاره در اصطلاح. این اصطلاح ما مرمومه ناینی نا حالا از مرموم نجموله امه میگرفتن ما قبل از نجموله امه جایی ندیدیم این مطلب بود این تعبیر بی ایجار. حالا مراد از کلمه ایجا ظاهرن مراد مرموم نجموله امه این بوده که در معانی حرفی چیزی ما به ازا نداره از ما به ازا داره فعل حالا نسبت داره و اونم چون نسبت باز مابعه ازا معانی ما حرفی مابعه ازا نداره دقت بفرمایی مثلا ما میگیم این کتاب روی میز. هست دقیقه کنید توضیح کلام مرمون نجمولت میگه کتاب مابعه ازا داره. این کتاب میز هم مابعه ازا داره این روی خارج. اما کتاب رو این رو چیه در کتاب روی میز هست. این رو غیر از کتاب و میز چیزی نیست یوج در معنا فی غیره درک کنیم معنای هر چی طبیعتش اینه که خودش در مآبه ایزارش چیزی نیست اونی که مابه ایزار داره عبارات از اسمه اما کتاب چه روی میز آمد. شما چرا الان کتاب رو روی میز نه کتاب چیزی به اضافه شده نه میز چیزی به اضافه شده مثلا زید در خانه زید در کاری که اینجا در میکنه این از که چیز خاصی رو مابل ازا نداره زید مابل ازا داره خانه. خانه هم که واضحه این کلمه در زید در خانه شما با ها اصلا در بین این دوتا ایجاد نمنامی کنه لذا قدمای حتی برای به اصطلاح سنیه ها هم گفتودن حرف برای رابطه هستم کلمه رابطه به جای کلمه رابطه مرمونش با لحظه برگونن که یوج دون محنا غیره اون وقت کلمه زرفیه که اسمه با کلمه فی که حرفه در این جهتش فهم میکنن زرفیه دردوی فقط فرمش اینه که ظرفیت رو شما فی نفسه لحاظ میکنی فی ما بین دو چیز که این ایجاد میکنه معنا رو نبیدید کتاب و میز کتاب روی میزم یکی کلمه رو دارید شمایی که از این دو تا از مال حیعته و رو همینه معنی حرفیه. این دو تا معنی حرفیه این دو معنی حرفی، چیزی ایجاد چیزی ما به ضا نداره ایجاد معنایی میکنه ما بین کتاب و میز نه اینکه ای چیز سرم می درست بشه کتاب و میز و رو رو چیز سر می می این ظاهرت حال باند که آلما بودنگررم کافییس شما ما جلومه کتاب در جه میرنی و کا نگاه خیلی هم نوشته. این ایجاد ظاهرا این بوده مراد مربون در جله میردی اما مرحوم نایینی حالا یا عزیزشون گرفتن جا به ذهن موارد خودشون خطور فرموزه نمیدونم مرحوم نایینی ایجادیست و معنای دیگری دیگه گرفتن اصلا یک فارغ اساسی بین معنای حرفی به اسمی گذاشتم. و اون این که در معنای حرفی معنا ایجادیست و در معنای اسمی اختاریست یعنی چی؟ یعنی مثلا لفظه کتاب به ازای این وقت شده ظرفیت به اعضای اون نصفت برس شده ولی چرا شما وقتی لازم ظرفیت رو بکار میبرین در حقیقت این معنا ها به ذهن شما اختار میکنه. کتاب، ذرفت و بلندگو، میز، صندلی فصل تمام این را شما بکار اما در معنی فی این نیست شما با معنی فی ایجاد رابطه میکنیم یعنی کاری که فیل می‌کنه. برای ایجاد ذرفیت پس دو طور ذرفیت داریم یک ذرفیتی که به ذهن شما اختار میکنی خود کنه ذرفیت یک ذرفیتی که شما ایجاد میکنیم بین دن افرادی یه زیدون فضاع. و این ذرفیت ایجادی اصولاً این خودش به نفسیت قوام نداره و لذا تا دو طرف نباشه صدق نمیکنه. اما شما میتونید بگین زرکیت مثلا میگید زرکیت از شعون ممکنه زرکیت لاجبه سوال ظرف نمیشه میشه مثلا مثلا بابسه بخواه بگم شما زرکیت نمیتونید تصور بکنید حکمان بشه اما فی رو نمیتونید تصور بکنید نمیتونی بگین فی از خطاعت ممکنه این سرشت و مرموم آینه اینجور تقشیدید از اوز مرموم آخون در معنای فی و زرفیت رو یکی میدونه اختلافش رو در لحاظ بازه از کلید اونجا مفتاست اوزیر شدید هاشیه کنی که آخون داره در کفایه انقل زمیت خورست استعمال فی مکان زرفیت یا من مکان ابتدا بعد قلط که جامعه این انقلط قل در کتاب نجمول علمه می اون فسارت معنافی فی و ابتدا در کتاب نجمول علمه هم این امپولتوکولفی که در کفایه آمده توی شرن کافی نیست این رو میرسد شریف جرجانی که هم سیدست و هم از علماء شافی صنمی نیست در هاشیهی که اینجا درشته اونجا آمده عجیب، این هاشیه میرسد شریف جرجانی فه امپولت اگر یکی باشن یا سه استعمال عهد و مکان آخر خود جوزه که نه این عبارت شده استقلالا اون عبارت شده حالتا. البته این معنای عادی به استقلالی هم توضیح دادم من چون ممکن است کفای مؤخر بشیم تا اونجایی که من دیدم قبل از کفایه نبوده این اصطلاح توی کتاب مرحوم نگونند من نیز عادی و استقلالی تو که ذهن من مساعده هست و شادم قبل از ایشان فصول اولی کسی است که این عبارت آورده این عبارت عادی و استقلالی رو در کفایه وامدار فصول در اون اقتدار معنای اقتدار و من یکیست از شرح نجمونه میرزیست اون انخلت و گلت هم در حاشیب میزه شریف و از شرح نجمونه میرزیست در, در این کتابی جنبی شده ما به این کلماتی که در اصطلاحات پس مرگوم نادیمی و نظام عرض شد که معنای حیات چون معانی حیات معانی حرفی هستند، روی این مبنی ایشان ایجادی هم ولذا مثلا ما دو جور زرجه داریم دو جور طلب داریم خود دقت کنید یک طلب اختاری میگه این پنه این اختاری تا گفتیم معنیش به ذهن یک طلب ایجادی اون طلب ایجادی با هم بدون امران نمیشه اون معنی حیعته که باید در زن ماده معیم بیان یا بعضی از الفاظی که در لغت عرب برست شده مثل للا حلم لام و علام لام و علام که حرفت مثلا للا باید علام ناس بیاد فعضه وجود در بیاد ایجاد معنای روشن شد این ایجادی و اختیر و چون با معانی حرفیه و ایجادی میدونه لذاب یک اطلاب در ما معبول نید. نه این تقیی در نه افلاق چون افلاق و تغییر در جاییست که معنا قابل اختار به ذهن باشه این ایجاد میشه ولذا شبیه این مسئله رو هم بعضی بخصد مثلا هیئت افعال برای نسبت طلبی است. شما نسبت رو ایجاد میکنید حالا آره اگه مراد اون ایجاد باشه معنای لا تفعل نسبت زجری هست این خلاصه هر هرکیست که مرحوم نایی دارم پس و اگه گفت انجاعت زیون اگر مهمان آمد نان بخرد اون وجوب نمیشه مغیز بشه چون اون ایجاد ایجادی اید. اگر ایجادی شد به همین نمس ایجاد میشه چیگه تقریب بگذاره کنه شبیه این بحث هم آیان در بحث سیغه و در بحث نکاح و نکاح داره اگر تعلیل بکنه یا در بحث ایقاعات مثلا اینجا جا من منت سفر و زوجتی تاله میگن نمیشه بلا میگن نمیشه وجوب با خود حیعت اون وجوب تغییر بر نمیداره ندیگه ولی ازا بگیش وجوب امن ارام بیاد شبیه این گفت تخلف برست تخلف انشا از منشع نمیشه به قول خودشون منشع از انشا آمدن مرادشون از منشع همون وجوبه یا مثلا مرکیت تخلف نرکیت تخلف زوجیت قلقه زوجیت از انشا نمیشه مرادشون از انشا زببشتو که نفسی که زن میگه نیموتون بگه زببشتو که نفسی اینجا عوال دیمه از خبر مثلا نیمیشه تخلقه بین منشر و انشا. توی فکر به این تعدیرم آمده پس بنابراین روشن شد مراد مرهون چون معانی حرفیه معانی ایجادی هستن غیر از معانی اسمیه لذا طبیعتا قابل تغییر نیستن این رو ترهید هم این بحث تغییرات اینجا فرمیدن اصلا خدمتون که این بحث شد در بحث واجب مشروط هم گذرشت و ما هم تکرار که این ایجادیتی که مهمونهایی میفردن ظاهرم ما با مراجعه به لغت فرد بین فی و ظرفیت به این لحاظ نمیبینیم یعنی به لحاظی که از کلمه ظرفیت این معنای به ذهن خطور میکنه همون معنا هم از فی خطور میکنه هیچ فرد بین بینیم دوستان این منوع افتدار انصافا فردی از این نیست اون فردی که هست این نیست که ایش اختاری که است. اون معنایی که مرحوم نجمولایم مپرونی اون معنای درستیه اون مراد نجمولایم این بود که معنای حرفی فی نفسه چیزی نیست طرف اینه طرفه اینه معنای حرفی کتاب از تو مید چیزی دیگه نداره حالا بعد یادن فی ما بعد از این تبدیر بود رابطه رابطی کردن اما مراد مرحوم نجمولایم اینه یعنی معنای حرفی در طرفه ایجاد میشه این معنا مثلا این تخت با این ذرییه فرض اینه صافه یک تخت ساخته، به تخت نمیگه آما در روی چهار پای قراض تا دیوار قرار دادیش میگه سخت این اختصاص به معنای حرفی نداره ایده از مفاهیم طبیعتشون نسبیه حالا ممکن اسم بشه ممکن حرف باشه یعنی با لحاظ دیگه‌ای تا این روی این چهار دیوار قرار نگیره تخت میشه میگه بسازن اما قرار نداد نمیگه تخت این هر چی که نسبی بود مرد حرفی باشه مراد از مر... مراد نایی یعنی شما این رو که الان ساختید این زمین هم که جای خودش بوده چیزی نشد اما از این حالت بین این زمین و این ساخته شما این سازه‌ی شما عنوان سر و استضاع شد ایجاد یک عنوان رو کرد این ایجادی که مرادی شده اینه و اما اون خارق اساسی شبی کلامی که در کتابنامه در صورتی که باشه ما عکس در هیئت معنای حرفی یک نوع معنای اندکاکی حالا عالی صاف که به کار که به محظور برخورد یک نوع معنای اندکاکیه یعنی حروف و وهیئات رو در هر لغتی حالا لغت عرب باشه یا غیر عرب این تصورم که همه لغات حیات دارن که در کلمات مرو استاد آمده واقعیت نداره. خیلی از کلمات و لغات با نداره، فارسی. لغات هندو اروپایی معانی مختلف رو با تسلط و پیشوند افاده میکنن. نه با حیات در زبان عربی که هیات مفید معناست. مثل فعل و مفعول و عربو و ادرو و داخلی. حیئات که عربی‌ها معانی متعدل در میارن. اما در زبانهای دیگه با اضافات هست. و بعد در بعضی از زبان ها هم احتمال قوی داره که ایسا تو با من نعمل کردن اصلا رو عوض می کنن. مثلا اگر بخواد فعل ماضی باشه فرق سنم اصلا میگه ضربه اما اگر بخواد فائل همونو بگیم مثلا میگه ناصر با مثلا یک ماده دیگر میاره کلا ماده رو عوض میکن در نظر من نرکن که بعضی از لغات چین چون چین چند لغت داره اینجوریه معانه جدید رو با ماده جدید میکنه. مختلف داره و این توضیح رو من اعرض در بیر از بحثایی که آیون در حقیقت معنی حرفی به اسمی بحث محصه ترش جنبه تاریخی معانی حرفی به اسمیه اونچه که ما الان با تجربه خارج در می معانی حرفی اصولا مرحله متاخره در وضع نسبه معانی حرفی و اصولا معانی حرفی دلالت برای یک عمق فکری بیشتری در انسان میکنه اصلا در درجه اول اساسا اختلاف اساسی انسان با حیوانات همین بود حیوان این حالت تجرید و نسبت دادن و جابجا کردن رو نداشت گویا معنی عقل همینه مثلا فرض یه گربه میخواد بیه گشنمه رو الان داره مثل میوم میکنه مثلا با مثال میخوام این دیگه نمیتونه بکنه دیروز گوش بودن با میوکلش مالی دیروز رو نمیتونه بگه یا یک این جابجا جا کردن و تحلیل کردن و نسبت ها این از خصائص ادراکات انسانی او او هرچی میگه زمان ها رو خودشه هیچ چی دیگه هیچ عقب جلو نمیتونه بکنه این جابجا جا کردن که ناشی از یک نوع تجرید ذهنی نیستکالی میخواموا اون بحث بشن این برفثر قدرت تحلیل اهلی برای حواات پیدا میشه. شما ببینید من عرض کردم متعارف اینه که در بخش های لغت شناسی برای سرگذشت تاریخ لغت بر میگردن که لغت به کارهای که طز لغت میگیرید که به جاناه های شهر هستند مجتمعاتی که عقب هستند. توی هستند تو هستند هستن. تماسی نداشتن با جامعه ارز اونها رو در مورد برنسی قرار رو میدن شما این تفل در اول خود دست یاد میگیره خوده کتاب رو یاد میگیره معنای هرکی روی مقدار که پیچ رفت اونم با اشارات شما دست روی مثلا مثلا یه سیب روی دست رو. اصلا اون نمیتونه تصمیر مخلوم رو بکنه اول ذهنی که هنوز تحلیل پیدا نکرده تحلیل این معانی رو نمیتونه بکنه ازا من به سوال با پیشرفتی که برشت در غیر داشت این پیشرفت محضی شد به پیشرفت اسماع معانی اسمی زیاد شد اصلا اتاق درست کرد اسمش اتاق داشت یکجا برای ماشین درست خیلی چه پارکینگ بود یکجا برای کتاب درست کرد اسمی کتاب پارکی بود و معانی اسمی هر مقدار در یک جامعه معانی اسمی بیشتری باشه اون ناشی از رشد و توسعه به استدان صنعتی فقط یک کسی که در میگه یک میکرد یک ده کی دوی مثلا 5 تا داشته خب به اندازه هم 5 تا درخت داره. از اون ده آمد بیرون 6 تا درخت میگه تو راه بی لگ 6 یاد میگه آمد یک ده ایلیو 1 تا درخت میگه بی درخ و هر چی اون مال مانی اسمیه اما معانی حرفی اون قسمت تحلیله حرفی و نظام معانی همیشه تفکر و و تحلیل و اون بینش فلسفی اینسان رو میرسونه من سآل گردم بعد از دوستان که فکر آتوکایی در خیلی از این گفتن در این مجتمع ها حروفشون خیلی کمه همین بالا و پایین چون تفکرشون محدوده ذهن باز نشده هر مقدار که تحلیل ذهنی شما به اینه این کلمه فلان. شما این مهیس و فلان الان بدونی شما تا عرب برای این حیثیت لفظ خاصی ورز نکرده به جش کلمه این جهت رو ولذا حیث دائما در لغت عرب اضافه به جمله میشه اما بعد که فلسفه آمد و تحلیلات و فلسفه حیث الا ماشاءالله به منفرد بنامه میشه الکلام من حیث رو مثلا صدوریم دن الان خودمون متکلمین عرب اختلاح داریم که رو ما چجوری بخونیم من حیث صدوری بخونیم منحیس و صدوریهی بکنیم منحیس و صدورهو بکنیم ادهه که مستردم بکنیم منحیس و صدورهو اصلا این رو اضافهی به مفرد مکنیم چون در لغت اصیل عرب حیس و اضافهی به مفرد این بحث لفظی نیست این یک عنقه بحث معنی در واقعی بحث لفظی نیست چون این کمتر محلی اصلا سو محل استفادهشون نبود هر مقدار که تغییر زنی بالا میره قدرت تحریر فلسفی بیشتر میشه معامی حرفیه بیشتر محله حاضر قرار میگن چرا؟ چون معامی حرفیه بیان اون زبایی معیق رو بررسی میکنن یا به قول مرمون نجام ایجاد معنا در غیر میکنه. مثلا میاد این شیع رو این سخت رو به لحاظه اینکه مثلا روی این قرار گرسته گردین یعنی هیت سخته از اون حس مثلا بوتونه از اون حس مثلا عمرش کرده از اون این حیسیات رو که جدا میکنه این حیسیات چیزی غیر از خود نیستن این معانی حرفیه در حقیقت در زندگی بشر ابتداش در حقیقت این بود مثلا یه در میخواست دیگه الان تشنمه خب میگم تشنمه این گربه ها میگه یه دفعه می‌گه دیروز تشنه بودم آب خوردن دیگه حیوانات اینجوری این نسبت این تحلیق این مایز اولیهی بود که بشر رو از بقیه حیوانات جدا کرد. البته این اولش این صورت بود بعد توسعه فراوان. شما در هر جامعه این نگاه بکنید. اون مقدار که بیشتر، مثلا مواقصات، قدرت عقلی دارند، تحلیل فلتزی دارند، میتونن ریزکاری های کار رو ببینن، معانی حرفی فراوانتری دارند و بیشتر هم مصرح استعمالی میکنن. حیاغات، خصوصیات، اضافات، اینها رو بیشتر انجام میدن به خاطر افاظه معانی جدید اون خب در جامعه این از در خور شخصی پشتیش نفر در خور میشستن این نیازی به امر رو نقل و, و قبولین و زج رو و اینا پکنی کنه پس بنابراین در حقیقت معانی حرفیه این معانی اسمی مرازف و خودشون فقط فاله به اساسش اینه که اینها به نمه اندکار هم من و افتدای یکیه مدوه اگر فی نفسه این ابتدا عدم مسبوقیه هر چیزی که مسبوق به چیزی نبودی که ابتدا مثلا بگیم قررتون من صورت نسا یعنی چی؟ یعنی قبل از صورت نسا مخوندن عدم مسبوقیت بقید این عدم مسبوقیت رو شما چی میگی اسمشون دقیقه ابتدا اینجور نیست؟ این, این, این عدم مسبوقیت رو اگر می خواهیم فی بگیم بگیم ابتدا این عدم مسئولیت رو بخیر لحاظ بکنیم در قراعت و خودتون و قرآن ببینید معنای اندکاتیه معناش اینه چند جهت رو نگاه میکنه یک رابطه‌ای که بین چند جهت خاص خبرش بده پس در اختیاریت طرحی نمی‌کنه نه این ایجادی. فرقش اینه که یک معنای نصوی موندکه در جهات مختلف رو به شما خبر میکنه. پس قرائت رو در نظر میگیره خودش رو در نظر میگیره قرآن رو در نظر میگیره اون بس طودور این قرافت در نظر میگیره صدایگبت چون گایی وقت میخواد بیگه من الان آنکاریم نه صدود این صدود به چه معناست؟ به معنای فعلی چون گایی وقت میشه به معنای اشتقاقی، معنای فعلی چیه؟ در معنای فعلی یک عدم و وجود در نظر میگیره در معنای فعلی چون معنای حادثی سی حرکت سیالونی به در عدم اعلان وجود با این دهات نزا میگه اصلا گفتن قرعتو در جایی کلا بکنه حدث گراعت رو اون گراعت رو به این معنا نبود و شد ببینید اگر بخواد بگه نبود و شد چه آره. این چه همین که نظر دقیق پس و لذایی که از این فرقیت خارجی حرف کردم یک نکته اینه که معانی حرفی برای قریه اختصارم در زمان یعنی همین که قرار شد به صورت اختصار و با معانی اسمیه بگه مثلا دو, دو ترس میشه که قراعت و این قراعت از من و صدورش از من درم و حلکت سرعرامی از عدم به وجود و این افتدار قبلش نبود و تمام میگنه با معانی اسمیه بگه چقدر توی؟ پس محنای حرفی یک نوع به اصطلاح ارنوز در زبان عرب اختضال میگن نمیدونم دیدید یاده؟ یه خطی هست مخصوط خبرنگار هاست خط برزن به فارسی رو همی دید میشید بهش میگن هر کلمه یک مثلا فرسان مثلا میگه صوبگاه رو جای صوبگاه یک بخ میزن رمز گذشن برای هر کلمه شو مخوان خبرنگار ها تنگی میسن این در زبان همی دیدید خط ای مثلا, مثلا هی مینجر. هی مینجر. این چیزا هست که تا تو این هم نشه این الان یه خطیه بهش اراغن اختصار حالا این خط اختصار یعنی اونو مختصر میشه در حقیقت معانی حرفیه با اسمی مرادشون یکی یه نوع اختصار میشن چون بر همش سر داد باشه بله اختصارش باشه به نفع اختصار و به نفع اندکافت فرقه ای السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم.